مصنوی معنوی مولوی برنامه سیزده هم سوال کردن آیشه رضی الله و از مصطفی علیه السلام که امروز باران بارید چون تو سوی گورستان رفتی، جامع های تو چون تر نیست. مصطفی روز به گورستان برفت با جنازه مرد از یاران برفت خاک را در گور او آگنده کرد زیر خاک آن دانش را زنده کرد این درختانند همچون خاکیان دستها برکردند از خاکدان سوی خلقان صد اشارت می کنند بان که گوش استش عبارت می کنند با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک میگویند راز همچو بتان سر رو برده به آب گشته تا ووسان و بوده چون غراب در زمستان چون اگر محبوس کرد آن غرابان را خدا تاووس کرد در زمستان اگرچه اگر چه داد مرگ زنده کرد از بهار و داد برگ منکران گویند خود هست این قدیم این چرا بندیم برب کریم کوری ایشان درون دوستان حق برویانید باغ و بوستان هر گل در درون بویا بود آن گل از اسرار کل گویا بود بوی ایشان رغم انف منکران گرد عالم می رود منکران همچون جعل زنبوی گل یا چون نازک مغز در بانگ دهل خیشتن مشغول می سازند و غرق چشم می دوزدند زین لمعان برق چشم می دوزدند و آنجا چشم نه چشم آن باشد که بیند معمنه. چون ز گورستان پیامبر بازگشت سوی صدیقه شد و همراز گشت چشم صدیقه چو بر رویش فتاد پیش آمد دست بر وی مینهاد بر امامه و روی او و موی او بر گریبان و بر و بازوی او گفت پیغمبر چه می جویی شتاب گفت باران آمد امروز از صحاب جامه می بجویم از طلب تر نمی بینم باران ای عجب گفت چه بر سرفگندی از ازار گفت کردم آن ردای تو خمار گفت بحر آن نمود ای پاک جعب چشم پاکت را خدا باران غیب نیست آن باران از این ابر شما هست ابر دیگر و دیگر سما تفسیر بیت حکیم آسمان هاست در ولایت جان کار فرمای آسمان جهان در ره روح پست و بالا هاست کوهای بلند و دریا غیب را ابری و آب دیگر است آسمان و آفتاب دیگر است نایدان الا که برخواسان پدید باقیان فی لبس من خلق جدید هست باران از پای پروردگی هست باران از پۀ نفع باران بهاران بلعجب باغ را باران پاییزی چ آن بهار ناز پروردش کند وین خزان ناخوش و زردش کند همچنین سرما و باد و آفتاب بر تفاوت دان و سررشته بیا همچنین در غیب انواع است این در زیان و سود و در ربح و غبین این دم ابدال باشد زان بهار در دل و جان روید از وی سبززار فعل باران بهاری با درخت آید از انفاسشان در نیک بخت. گر درخت خشک باشد در مکان ایب آن از باد جانفز آمد آن باد کار خیش کرد و بر وزید آنکه جان داشت بر جانش گذید در معنی این حدیث که اختنمو بر در ربی گفت پیغامبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زین هار زانکه با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کو کرد با باغ و رزان راویان این را بظاهر بردند، هم به آن صورت قناعت کردند بی خبر بودند از جان آن گروه کوه را دیده ندیده کان بکوه آن خزان نزد خدا نفس و هواست عقل و جان عین بهار است و بقاست را عقل است جزوی در نهان، کامل العقل بجو اندر جهان، جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون غلی شود. پس به تعویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک. از حدیث اولیا نرم و درشت تن زن که دینت راست پشت گرم گوید سرد گوید خوش بگیر تازه گرم و سرد بچهی و سعیر گرم و سردش نوبهار زندگی است مایه صدق و یقین و بندگی است زان که زو بستان جانها زنده است، اینجا واهر بحر دل آگنده است بر دل عاقل هزاران غم بود، گرز باغ دل خلال کم شود پسیدن صدیقه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم که سر باران امروزینه چه بود؟ گفت صدیقه که ای زبده وجود حکمت باران امروزین چه بود؟ این زباران های رحمت بود یا بهر تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود، یاز پاییزی پرآفات بود. گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بران آتش بمانده آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی، این جهان ویران شده شده اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان استون این عالم ای جان غفلت است هوشیاری این جهان را آفت است هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پست گردد این جهان هوشیاری آفتاب و هرس یخ هوشیاری آب و این عالم وسخ زان جهان اندک ترشوه می رسد، تا نغرد در جهان هرس و حسد. گر ترشوه بیشتر گردد غیب نه هنر ماند در این آلم نعایب. این ندارد حد سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن به کزوی جهان شد پرترب رست از آوازش خیالات عجب از نوایش مرغ دل پران شده و صدایش هوش جان حیران شدی، چون بر آمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشتگیر شد. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پال دوم. گشت آواز لطیف فزاش زشت و نزد کس نیرزیدی بلاش، آن نوای رشک زهره آمده همچو آواز خر پیره شده خود کدامین خوش که او ناخوش نشد یا کدامین سقف کن مفرش نشد غیر آواز عزیزان در صدور که بود از عکس دمشان نفخ سور اندرون کندرون ها مست از اوست نیستی کین هست هامن هست از اوست کهربای فکر و هر آواز او لذت الهام و وحی و راز او چون که مطرب پیر ترگشت و ضعیف شد زبی کسبی رهین یک رغیف گفت عمر و محلتم دادی بسه لطف ها کردی خدایا با خسه معصیت ورزیدم هفتاد سال باز نگرفتی من روزه نوال نیست کسب امروز مهمان تو ام چنگ بحر تو زنم آن تو ام چنگ را برداشت و شد الله جو سوی گورستان یسرب آه گو گفت خواهم از حق ابریشم بها کو بنی پذیرت قلب ها چونکه زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ بالین کرد و بر گور فتاد خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد و بجست گشت آزاد از تن و رنج جهان در جهان ساده و صحرای جان جان او آنجا سرایان ماجرا کن در اینجا گر بمانندی مرا خوش بودی جانم در این باغ و بهار مست این صحرا و غیبی لالزار بی پر و بی پا سفر می کردمی بی لب و دندان شکر می خوردمی ذکر و فکر فارغ از رنج دماغ کردمی با ساکنان چرخ لاغ چشم بسته آلمی می دیدمی ورد و ریحان بی کفی می چیدمی مرغ آبی غرق دریای عسل عین ایوب شراب و مقتسل که بدو ایوب از پا تا بفرق، پاک شد از رنج ها چون نور شرق. مصنوی در حجم گربودی چو چرخ، در نگنجی دید روزی نیم برخ. کن زمین و آسمان بسفراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. این جهان کندرین خوابم نمود از گشایش پر و بالم را گشود این جهان و راهش ار پیدا بودی کم یک لحظه آنجا بودی عمر می آمد که نی تامه مشاو، چون ز پایت خار بیرون شد براو مولمول میزدانجا جان او، در فضای رحمت و احسان او. در خواب گفتن حاطف مر را رضی الله و انها که چندین زر از بیت المال به آن مرده که در گورستان خفته است. آن زمان حق بر عمر خواب گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت در عجب افتاد که این معهود نیست این زغیب افتاد بی مقصود نیست سرنهاد و خواب بردش خواب دید که از حق ندا جانش شنید آن ندای اصل هر بانگ و نواست خود ندا آن است و این باقی صداست ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ هر دمی از وی همه آیت اله است جوهر و اعراز میگردند هست گر نمی آید بلا زهشان ولی آمدن از ادم باشد بله ز آنچه گفتم من ز فهم سنگ در بیانش قصه پشدار خوب نالیدن ستون حنانه چون برای پیغمبر علیه السلام منبر ساختند استون حنانه از حجر رسول ناله می زد همچو ارباب عقول گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون گفت جانم از فراقت گشت خون مسندت من بودم از من تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی گفت خواهی که تو را نخله کنند شرقی و غربی زتو میوه چنند یا در آن عالم حقت سر کند تا تر و تازه بمانی تا ابد گفت آن خواهم که دائم شد بقاش. بشنو ای غافل کم از چوب مباش. باش. آن ستون را دفن کرد اندر زمین تا چو مردم هشر گردد یوم دین. تا بدانی هر که را یزدان بخاند از همه کار جهان بیکار ماند هر که را باشد زیزدان کار و بار یافت بار آنجا و بیرون شد کار. آن که او را نبود از اسرار داد کی کند تصدیق او نال جماد گویداره نزدل. دل بهر وفاق تا نگویندش که هست اهل نفاق گرنیندی واقفان امریکان در جهان رد گشته بودی این سخن صد هزاران زهل تقلید و نشان افگانتشان نیم وحمه در گمان که بزن تقلید و استدلالشان قایم است و جمله پر و بالشان شبهه انگیزدان شیطان دون درفتند این جمله کوران سرنگون پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بیتمکین بود غیر آن قدبه به زمان دیدبر که ثباتش کوه گردد خیر سر. پای نابینا اصا باشد اصا تا نیفتد سرنگون او بر برحسا کانسوار کو سپه را شد زفر اهل دین را کیست؟ سلطان بسر با عصا کوران اگر ره دیدند در پناه خلق روشن دیدند گرنه بینایان بودندی و شهان جمله کوران اندی در جهان نیز کوران کشت آید نی درود، نی عمارت نی تجارت ها و سود گر نکردی رحمت و افضالتان، در شکستی چوب استدلالتان این اصا چه بود، قیاسات و دلیل؟ آن اصا کی دادشان؟ بینا جلیل چون اصا شد آلت جنگ و نفیر آن عصا را خورد بشکن ای زریر او اصا داد تا پیش آمدید آن اصا از خشم هم بروی زدید حلقه کوران به چه کار اندرید دیدبان را در میانه آورید دامن او گیر کودادت دادت اصا. در نگر کادم چه ها دید از اصا موجزه موسا و احمد را نگر چون عصا شد مار و استن با خبر از عصا مار و از استن هنین پنج نوبت می زنند از بهر دین گر نامعقول بودی این مزه کی بودی حاجت به چندین معجزه هرچه معقول است اقلش می خورد بی بیان معجزه بی جر مد این طریق بکر نامعقول بین در دل هر مقبل مقبول بین همچنان بیم آدم دیو و دد در جزایر در رمیدند از حسد همز بیم معجزات انبیا سرکشیده منکران زیر گیا تا به ناموس مسلمانی زیان در تسلس تا ندانی که کییاند همچو قلابان بران نقد تباه نقره می مالند و نام پادشاه. ظاهر الفاظشان توحید و شرق. باطن آن همچو درنان تخم سرع فلسفی را زهرنی تا دم زند. دم زند دین حقش بر هم زند. دست و پای او، جماد و جان او، هرچی گوید، آن دو در فرمان او، با زبان گرچه که تحمد می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند. اظهار معجزه پیغامبر علیه السلام، با سخن آمدن سنگریزه در دست ابا جعل سنگ ها اندر کف بوجهل جعل بود گفت ای احمد بگو این چیست زود گر رسولی چیست در مشتم نهان چون خبر داری ز آسمان گفت، چون خواهی بگویم، کانچه هاست یا بگوید آن که ما و مراست؟ گفت، بوجل، این دوم نادرتر است. گفت، آره، حق از آن قادرتر است. از میان مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد، بیدرنگ. لا الهه گفت و، الا الله گفت. گوهر احمد رسول الله صافت چون شنیده سنگها بوجل این زد ز خشمان سنگها را بر زمین. برنامههای های مصنوی معنوی مولوی را مینوگتاش و شهباز ایرج، تهیه و اجرا کردند.